حتو دیدار آخر شاید رسید از راه فردای یه روز بهتر بلک هوادارت چون بلدی بخندی و چشم دل ببازی با اش دل ببندی اشما که دل به سبزه هیچیه توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا اشباک قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و فردا. سلام به همگی من فرشید و منوفی. اینجا رادیو فینجا شماره نه سد امروزم با شماییم ب جان میگییمتحریم ها شما سلامت ها... همین فیلم ون مچکه خ خب خوبی این خوش این سلامت این چیکارا میکنین؟ اولین روز بدون تحریم خوش گذشت چیکارو کردی کجا رفتین چی خریدین؟ تر از همین که چی پوشیدین بالاخره جان مثل همیشه با با قیمت ها چی دلار نرسید در به هزار تومن آقا پراید پراید نشد 6 میلیون؟ خب اول عجله نکنید دیگه کم کم این لغوه تحریما اثر خودشونشون میده به خدا انقدر خوب میشه ما که چشمون مثل لامپ 100 وات همجوری روشنه اما اینا رو ول بریم سر موضوع امروزمون این هفته ما داریم در مورد زیبایی ایرانی صحبت میکنیم و نمیشه از زیبایی صحبت کرد به بحث شیرین آرایش و لوازم آرایشی و آرایشگاه‌های زنانه نپرداخت اینه که امروز ما با کسب اجازه از خانوما میخوایم یه یالا بگیم و سری به آرایشگاه‌های زن آرایشگاه‌های زنونه بزنیم و ببینیم بالاخره به راز زیبایی و جذابیت بعضی از خانوم ها میتونیم پی ببریم یا نه اینه که خواهشن یه امروز دیگه ما را خودتون بدونین دیگه دیگه راحت باشین و دیگه بله ما داریم می آیم تشریف می یعنی یه جورایی یالله یالله ما اومدیم یا الله! سالها پیش شاملوی شعری گفته بود با این مضمون که حراس من از مرگ نیست وحشت من از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن در آن از آزادی آدمی افزون باشد حالا ما باید بگیم حراس ما مردن در سرزمینی است که قیمت غبر در آن از قیمت خانهای برای زندگی افزون باشد آقا چند روز پیش گزارش از صدا و سیما در مورد قیمت‌های عجیب غریب غبر تو ایران پخش شد یه بخشایشو گوش کن همش بالا از این م خیابون هر قطه بگیری 5 پ و پ 6 پنج من به سررا مت میلیون خرم اب با به صد میلیون است متابابسته داره کجای آرمگاه بخواد تو سر نبش داریم آخره چیز بلوچ داریم جای خوشح و هوا آخه دیگه قبرم بالا پایین و خوشح و هوا بدا با هوا داره بعد با این قیمت ها واقعا میلیون. آقا 300 ملیون پول یه خونه است عجب تو موردن هم چشم هم چشمی آخه من نمیفهمم به خدا حالتا الان که توی خبرام داشتیم جدیدن مد شده خیلی ها فشن و آنچنانی خودشون رو سنگ قبر را حکمی یعنی عملا تو قبرستون که قدم میزنی انگاه آمدی فیسبوک مثلا تو اینستاگرام انگار سنگ قبر را همین شده شبیه صفحات پروفایل نکنید نکنیم نکنند دیگه ما نمیدونیم آقا به خدا چند وقتی که صفحه ریچ کیدزا به قبرستون و ریچ کیدزا به اشت زهرا اینام در میاد توی انستاگرام و فیسبوک این برم و ظاهرن ریچ هم همچی دارن قلم خودشونو گسترش میدن حتی در مرگی حالا ببینید کی گفتم دیگه جون فردا و پس فردا مدارس ابتدایی تهران شهرریه تعطیل شد. باشه جون نمیدونی چقدر ما معلم از این ها خوشان میشین خسته نباشین کلا دیگه ماشالله تو تهران انقدر مدارس رو بله آلودگی تعطیل میکنن و سیستم اطلاع رسانی رو عوض کنن. یعنی به جای اینکه ها رو اعلام کنن بگن مثلا کدوم روزا مدارس بازه. آه چرا این آلودگی درست نمیشه پس؟ تحریم هم که برداشت شد که. عجیبه واقعا نمیفهمم. و اما خانم ها آقایون دختر خانم ها و ها عرض شد خدمتتون که ظاهرا بعضی از بانک ها برای وصول اقساط عقب افتاده ی وام هاشون و تحت فشار گذاشتن بدهکاران به جای طی مراحل دستوپاگیر و طولانی اداری و قضایی و اینا به روش های سنتی و البته خیلی ضربتی رو آوردن الان به صحبت های یک خانم کارآفرین که وامی از بانک گرفتن تا کسب و کاری را بندازن و خب بعدن به مشکلاتی که برامشون پیش اومد لا قادر به بازپرداخت این وام نبودن شما گوش کنین لطفا فردی از پشت خط که متعلق به بانک بود گفت خانم اگر شما اومدید بدهیتون رو صاف کردید کردید نکردید ما تا اونجا که خودمون میدونیم تو یه دختر دارید و اون رو ما میدوزیم این اینها چیان که میخوان بچه منو رو بدوزن؟ مگه میشه؟ فکر یعنی ببین بانک چقدر باید تحت فشار باشه که برای وصول طلبش؟ از بدهکارا به شرخری و آدم روبایی رو بیاره عجیبا غریبا اینه که رو خدا اگه وامی چیزی از بان گرفتین حواستون باشه اقتصادش رو سر موقع پرداخت کنین رو خدا بابا یه وقت حواستون پرچه یه قسطی به بشه میبینی تو خیابون داریم میری چهار تا گولاق دورت کردن انداختن تو گونی بردنت بعدم هم زمی به خانواده تایی میخوای فلانی رو زنده ببینی پرداخت کنین. چه میدونم با نامه هم مثلا یه بند انگشتی گوشی نکه دماغی چیزی هم ازتون میبرن میفرستن که خانوادتون بفهمن مثلا بانک فلان شوخی نداره با کسی یعنی چی اصلا خیلی مراقب خودتون باشین تو رو خدا خیلی مراقبت کنی خیلی خوش آمدید خانم بنده در خدمت هم. سلام ببخشید من در خواست وام داده بودم بله به نامه افت خوش بله جذبت این تو سیستم چک کنم مهم. با وام شما مافقت شده خدای شاید بد. خیلی ممنونم بفرمایید این همچکه صد ملیونی وام کار آفرینی خدمت شما وای ممنونم چقدر زود و راحت پرداخت شد من همیشه از خدمات بانکی شما استفاده می کنم خواهش می کنم خانم باعث افتخار ماست فقط لطفا اقصادش رو در مورد مقرر پرداخت کنید که مشکلی پیش نگرد بله بله حتما چش. ببخشید اسم شما رو می بپرسم بله کامبیز کلانی هستم خانم خیلی خوش آقای کلانی خیلی لطف گرد یک سال بعد بله بفرمایید ببینات باش گوش ببین چی میگم الان دو ماه قسط مامتو ندادی ببخشید شما نمیشناسمتون نبایدام نشاسی دیگه وامو گرفتی یا تو بالا کشیدی یا نمیشناسی دیگه, دیگه. این چه طرز حرف زدن ببخشید شما آقای کلانی نیستین من کلانی من به من میگن کامبیز کلانی آخرین بار کی ما میجونه تو دیدی دو روز پیش بود یعنیش این حرفو من متوجه نمیشم ما اینجا الان باشه. آره شب یاری جو جست دانش و کو مینا مامان جون مامان منو چرا فرستاد بیو قصه تو بده ماموت بودی وای مامان خودتی مامان مامان تویی دخترم دیگه ببینش گرفتی شیشو فردا میای قصه تو میدی نه تو تعبیر میگیری خدا فر وای خدا مامان چی کار کنم خدا حالا چی کار کنم باما روز بعد سلام، ببخشید من قسط و مدم وامم رو بدم مادرم، مادرم اینجاست؟ بله، خیلی خوش آمدید خانم، اسم شرکتون؟ افت خوشگول هستم، دیروز بهم زنگ زده بودن از طرف بانک بله. مادرم حالش خوبه؟ بله، بله خانم خوشگول، مشتاق دیدار، قصده معوقتون آوردیم بله، این خدمت شما، اه. این... قصه دو ماهه بله. گذشته است. اینم قصه شش ماه آینده است. مادرم بله. کجاست حالش خوبه مادرم بله ایشون در کمال صحت و سلامت هستن یک لحظه به من اجازه بدیم لطف کنید بیاری نشون. بله بله اقصاد معاقشون آوردن. الان تا اشتبیه خیلی ممنونم دیروز شما تماس گرفته بودین یکی بود میگفت کام بیس کلنگه نمیدونم دائما تهدید میکرد بله خودم بودم من از شما خیلی قصش میخوام به خاطر کمبود نیرو در ساعت تعطیلی باج بنده در بخش تسویه حساب بانک ازیکه پیگیری پرداختای معوره و دروگان گیری از مشتریان بعد حساب رو هم داشته دارم شرمنده دیگه اصلا باورم نمیشه خیلی اینا مسائل داخلیه بانک بفرمایید فورو فور کنید لطفا بله جا. چشم. بله اینجا رو هم امضا کنیم بله بله اینجا خیلی ممنون بله این هم مادراتون صحیح و دارن باش خدایش البته یک مقدار خراشی دیگه های ستی روی صورت و بدنشون هست که تهی چند روز آینده حل میشه آخ مامان مامان مامان دوختار دخل... دخل... دخل... آخ چه سحنی رومانتیک و تحصیل گذاری من همیشه با دیدن این صحنه منقلب میشم لالقلاش مکن فتنه و پرخاش مکن چهر مکن فاش مکن بر سر بازار مرا روز تو این روزت تو این حاصل دریوزت دای آب تو هی خوزت تو هی آب دهی با ما تو خب این لارت کار جدید محسن چاوشکی به اسم قلاش بریم سراغ برنامه خودمون امروز یک شنبه 27 دی ماه 1394 میریم سراغ معجزه آرایش زیبایی با کمی بتونه و رنگ بیانی شماره 967 بدانید و آگاه باشید که وقتی کسانی را ملاقات می کنید که از فرط آرایش بیشتر به تابلو نقاشی شبیه تا آدمی نباید دچار تپش قلب و تنگی نفس بشوید لکن باید طوری برنامه ریزی کنید که گاه اینجور آدمها را بدون آرایش هم بتوانید ملاقات کنید که در آن صورت قدر خود را دانسته و اعتماد به نفس از دست رفته خود را بازیابندگانید نید امزام جمعی از با آرایش میونه ای نداشته ها بود تو مجالس و مراسم مختلف همیشه تو کف خوشگلی این اون بوده ها و اعتماد به نفسشون به کیلومترها زیر خط فقر رسیده آیه رادیو پس بردان بینی داشتیم نفس نمیتونستیم بکشیم رفتیم دکتر زیبایی نبود خودتی بردروفای توش و تراشیدن یه هفته در روزم بود تو پانسمان بود چسبارو که کندیم آقا هر کی رسید یا چیزی به ما گفت خوب شده بد شده کت شده زش شده صاف قاری رنگش هونده خلاصه بساطي داشتیم از دست این ملت همیشه در صحنه فقط عیالمون یه نفس راحتی کشید از خورخور ما شباب بنده خدا خوابش نمیرفت و با انرا باشه شما بگو انراف بینی ما میگی بنراف بینی از این انراف بینی ها انقدر ما دیدیم انقدر ما شنیدیم به خدا ولی خب دیگه حالا به هر حال یه خود از خودگذشتگی کردی دیگه واسه خاطر عیال رفتی دماغ و سر بالا ارزکی زدی و اینا دیگه اره دیواری کلا بقیه بخندن سر به سرت بذارن بله هم انحراف بینی داشتی باش باش! این هفته به ما بگین چقدر به زیباییتون اهمیت میدین چقدر از لوازم آرایش استفاده میکنین و آیا حاضرین برای زیباتر شدن زیر تیغ جراحی برین یا نه مثلا چه میدونم حاضرین یه دستی به این قوز دماغتون بکشین یا برخی ها رو تر بزرگتر و یا کوچکتر و برخی دیگه ها رو کلاً صاف کنین بر پیکارش داشتن یک شکم سیکس پک چقدر براتون اهمیت داره آقایون خانومها آقایون زیر رو برداشتم از خاطره ای حسی چیزی درباره زیر ابروهاشون دارن بگن دیگه ما هم در جریان باشیم دیگه آره بدونیم داری این خاطره چیزی داری ظاهرا که خاطره چیزی دارم سلام فرشته من آرمان 14 سالمه و من یه بار دو از چشمامم راستا تو درشوری میخواستم ابرو بزنم با تیغ و دستم افتاد نصف ابروم رفت حالا من یا آرمانم شده <تصفيق> ببین نه از اون کاراستا آرمان نسو ابرو این چه کاری خب میکنید دیگه البته این لقب موند رود دیگه احتمالاً حالا بازم نسو ع... آرمان نسو ابرو زیاد بد نیست میدونی خب بعضیا هستن ما شنیدیم یه چیزای دیگه یه کارای دیگه ای میکنن یه اتفاقات دیگه سرشون میاد لقب خیلی بدتر از این میذارن روشون و اینا دیگه حالا ما نمیتونیم مثالاش اینجا نمیشه رسان نس حال میدونی دیگه نمیدونی هم دیگه بپرس از بقیه بپرس من نمیتونم بگم خلاسه که این هفته ما رو از خودتون بدونید و به همون بگین به چه قیمتی حاضرین که زیباتر و خواستنیتر به نظر برسین سفدر نمیگم از کجا تو تو کفش بمونین بازم من بله آقا فرشید اردشیر هستم دیگه از پاستاران منوچ میم اسفهان آباد سندباد و غول چراغ جادو از غار چهل بغداد ایمان از سهران مجید از فرمانی چیچینی از آغوزدار اه... بخون دیگه فرشید مجید نت انقدر امضا میکنم تا بخونی از مسعودیه روی خط جوونی رضا جون از ونکوور سال سلمان که اچ از ایران سیسان بلوچستان چابهار سامان و سیما از توف خانه امیرعلی از تهران نوید و ترگل سهر از اسفهان امیر از کیش فریبا عاشق فرشید خیابون پیروزی تهران آخه عاشق من سانی بلا گرفته از تهران بلا بگیری تو سانی مامان فرشته مهربون چیز خرمشهر مامان فرشته مهربون یا مامان فرشت؟ نمیدونم امیر بابای الیسا جون بابا بخون دیگه تو که منو مردی کاشمر یا کالیفرنیا به سفریان زیر میزت <تصفيق> سوناس <تق cost> امضا کردم پای برنامه ما رو در اپلیکیشن آیفون iOS و اینا دیگه بله زیر میز از زیر میز بودن ایشون به رنگ خان, خان خیلی ممنونم از امضایاش آره تارا... تارا ایمیل داده گفته سلام پرچیز جون خفی والا تام جایی که من اطلاع دارم الان جای رو چشمتون روز بعد نبینه پسرها گرفتن گوشاشون رو که میکنن ابروهاشون رو بر میدارن حالا اینجای جای, جای خود اینا جای خود اه... کرم گیریمشونو چی میرن عروسی بهشون میگی کرم زدی میگن نه خب پس چرا رنگ رنگ گردنتون فرق داره آخه الان جدیدا مد شده خط داخل چشمم میکشن خدا به خیر بگذارونه. تارا این ایمیلو فرستاده. ممنونم. اون وقتی جوای بود و امر و برداشتن مرد و اینا ببین من 20 سال پیش پدرم بله. رو هم که پولت ابو جو برمی داش پای من برداشت پدرم گفتم بهتر شو راضی بودم و هیچ اهمیتی هم نمیدم. به کسی که میگم ابوخاله و فلان ابلو خودم احتیاجی دارم خوب کاریم کردم قربونت برم بوس بوس درستش هم همین است اون چهار دیواری اختیاری خوب کردی به حرف هیچ کی جز دل خودت گوش نکن بوس بوس مرسی از تماس ابرو برداشته 20 از 20 سال پیش ابرو برمیدارم نگفت ولی چند سالشه نفهمیدیم چند سالش هست و خود مرگم بده ابروشو برمیداره فیسبوک و اینستایگرام برابطه فیسبوک و اینستاگرام. کلی کامنت داریم تو اینستاگرام گفته که پری سیما گفته الان رابطه به پولداری و بی پولی نداره کسانی دیدم که با کارگری پول در میارن قسطی عمل بینی و لب میکنن بله یالا اینم هست دیگه متاسفانه یا خوشبختی متاسفانه بعضیا راه فرار از بی پولی رو شوهر پولدار میدونن راه پیدا کردن شوهر پولدار رو زیبایی میدونن بعد راز زیبایی رو توی عمل دماغ و لب و گونه رو اینا میدونن عملم هم که دیگه راضی نداردی پول میدی عمل می‌کنی فول اسکای تو اینستاگرام گفته هر چقدر اعتماد به نفس کمتر آرایش بیشتر امضا جمعی از خود نصف بینای نصف عمرشونو جلو آینه در دندگان راتیو پس فرد بعد مثلا هم اعتماد به نفسه دیگه اگه باشه با یه دماغ مثل چماغم هم می‌تونی بری تو هر مجلسی گل سر سبد باشی به خدا به جان را دیدیم که میگیم یعنی بعد دیگه اینستاگرام ای جلالی گفته پول باشه میرم عمل برای بلند کردن قد حیف که نیست بله اون کف، کفش پاشنه بلند الان از 3 سانتی تا 18 سانتی است دیگه دیگه پول که می ده کنه توی فیسبوک هم یه چند تا از کامنت های فیسبوک هم بخونیم اه... فاطمه گفته که آیا منم باید به سوال این هفته برنامه جواب بدم اصلا من به جراحی زیبایی نیاز ندارم داوطلبم عکسمو بدم به این سالن‌های زیبایی بزنن دیوار به عنوان الگو استفاده کنن ایول اعتماد به نفسم چه شاخی شدم <تصفيق> مرسی اعتماد به نفس واقعا اگه البته عکستون فتوشاپ نباشه حالا نه در حد زدن عکس اصلا تو سالن‌های زیبایی ولی خب حالا به چش خوهری خوبین دیگه دست به اینجا نزنیم شما آره همینجوری خوبه بعد دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه گفته هر کاری که جهت زیبا شدن و زیبا دیده شدن انجام بشه حلال فتوای مرا قبول کنید بله اینم فتوا داده کوروش دیگه بعد به شرطی که به سلامتی لطمه نخوره و یه نه حرامه اینم فتوای ماست پسورد رادیو فردا ایمیل ماست 20420 و 20420 73359 5555 شماره 55 های ماست در فیسبوک گوگل پلاس ساوندکلاود اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید برامون کامنت بذارید در کانال تلگرامی ما میتونید جوین بشید میتونید اپلیکیشن رادیو پس فردا رو آی میتونن دانلود بکنن روی آیپد رو یا روی موبایلشون و از طریقه اپلیکیشن صداتون رو برای ما بفرستید و یا برنامه های ما رو دانلود کنید و همینطور به صورت زنده راژیو فردا رو از طریقه همون اپلیکیشن بشنوید تلفون های ما دوسف 420 22 11 24 133 و 163 و آنهایی که از داخل ایران تماس میگیرن دوسف 420 226 22, 21 79 39 چجوری پای منو قصه خودت کشوندی چجوری اسیر ای حادثه تازه شدم من به فکر رد شدم از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم آخرش راهی من به عشق تزیم کردم ساعت زندگیم و با قلب تو تنظیم کردم آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید. شکن کن که با تو این دیوانه است فری. چه جوری نگاهی ساده تا مسئله آرایش و زیبایی توی خانم‌ها یه بحث فوق تخصصی و پیچیده است که آقایون حتی اگه بخوان و تلاش هم بکنن و اینا خیلی به هر حال در نهایت سردر نخواهند آورد ازش کل. خب جای نگریونی هم نداره زیاد. همون طور که وقتی توی رستوران خیلی خوب ما غذای خوشمزه میخوریم مهم نیست که مثلا حتما بدونیم اون غذای ها و تکنیکای پختش چی بوده و چهجوری درست شده و چیابچ زده شده و اینا تا زیبایی خانم‌ها هم لازم نیست حتماً سر در بیاریم که این که پشت هر خوشگلی مثلا چه مقدار تکنیک و فن و تلاش و اصطلاحات عجیب قرار داده اینا رو هم بهتر ندونیم همونجین میبینیم لذت چه میبریم گرچه خیلی هم هستن که عقیده دارن که خوشگلی در سادگیه مثلا این همه دنگ و فنگ و برای خوشگلی بیشتر و اینا رو قبول ندارن بلاخره خب سلیگه ها متفاوته همونجوری که خب تعریف ما الان از رستوران مثلا مثال زدن از خوشمزه بودن غذا متفاوته مثلا یه عده چه میدونم خام پیچیده ترین غذا با مهارت بهترین سرآشپز با بیشترین زحمت خوشمزه ترین از نظر ما تهیه شده تهیه شده باشه به دهن اونا مزه نمیکنه همین همچنان گاز زدن ساقه کرفسو و خوردن گل کلم و به هر چیزی اینا ترجیح میدن متقبلا هر چیزی طبیعیش مثلا بهتره خب اینا هم این شکلی هن اینا یعنی که خوشگلی به سادگیه هر, هر کسی یه سلیخ و دیدگاهی داره دیگه ها چیکار کن؟ یکی از شگردهایی که از zamanهای دور برای خوشگل تر شدن کاربرد داشته استفاده از لوازم آرایشیه. اینکه اولین بار تو تاریخ چطور انسان‌ها به استفاده از لوازم آرایشی رو آوردن تو خب زیاد مهم نیست فقط ما می‌دونیم که حدود مثلا 2000 سال پیش هم ملکه کلوپاترا خط چشمی کشیده از بغل چشش تا بالای گوش. اما اصطلاحات و لغات تخصصی تو دنیای آرایشی زنانه به زیاد پیچیده است که وارد شدن به اون خودش تخصص داره دکترا میخواد به عنوان مثال ما تو دنیای آرایش و فقط در یک حوزه مو کلی اصطلاحات عجیب غریب داریم مثلا براشینگ داریم که مدل دادن مو با برس و حرارت به شکل های مختلف شینیون داریم همون جمع کردن موها دونبس خودمون الان پیشرفت کرده بهش میگه شینیون بعد دیگه چی داریم پیلی داریم موها رو با بیگودی های اینجوری میدن موج میدن تاب میدن به خودش بر خودشون هم یه دنیای فقط فقط اینا نیست که مش داریم، دکلره داریم، دکوپاج داریم، فقط تو سینما دکوپاج نداری، آراجی زن دکوپاج دارید. دیگه رنگ ساج داریم، هایلایت داریم، فر داریم، دیگه علی بگو چی‌ها داریم؟ علی بگو چی‌ها داریم؟ دیگه من اینا رو گفتم. بگو دیگه چیه؟ دکلره داریم، هم دکوپاج. فرانسوی هم. همش فرانسوی‌ام. هم. همش فرانسوی‌ام. همش فرانسوی‌ام. هم. اسامی تو بگو چی داریم؟ بگو شما جان. خبر شما ساده این پس بله لی جان از این چیزاست ویجیترین است که فقط گفتیم مثال زدی خب حالا یه چند تاشو بگو بلدی دیگه بالاخره درو من حمرو گفتم حمرو شاتوت شاتوت پایین ما رو رنگ میکنن بالا... آها پایین ما رو رنگ میکنن بالا همینطور ساده بیموند اسمش دلوقتي. شیه؟ ای گفتی؟ اونم فرانسایی یاشوش؟ یاشوش؟ توشا... <تصفح> شوشاش؟ نه اصلا میرن ناخون میکنن, میکنن حله دیگه <تصفح> دیگه ببین اینا هست اکسینشن هم مو اضافه میکنن اکسینشن <تصفح> بعد دیگه اینا رو داریم خلاصه آقا هزار تا چیز دیگه هست اینا فقط اصطلاحات مربوط به خموهای خانوماست همین اصطلاحا و تکنیکا توی هر قسمتی از صورت از پشت پلک و عبرو همجورد تا زیر گردن خانوما وجود داره دیگه واقعا یاد گرفتنش از قوه درک آقایون خارجه واقعا خیلی سخته خیلی پیچیده شده اصلا مسائل مهم حوزه آرایش و زیبایی یکی سن آرایشه. پیروز سرایه آمد دنبالم بریم مهمونی جشن تکلیف بچه دختر خالش گفتم من که نمیشناسمشون بعدم مهمونی جشن تکلیف گفت به همونست واسه پارتی گرفتن گفتم من و تو همسن این بچه تازه به تکلیف رسیده ایم که بریم اونجا گفت بی خیال سوارشو بریم رسیدیم اونجا دیدم واقعا پارتیه نور کم و آهنگ رقص و. خبریم از دخترای 9 سالهی تازه به تکلیف رسیده نبود گفتم سرع یا انگاری راست میگفتی یا اینا همه دختر دبیرستانی هم با ماماناشون گفت دبیرستانی کدومه آرایش کردن سنشون بیشتر به نظر میرسه گفتم اخه از این سن گفت تو چیکار داری اینا مشتری های بلقوه منن در آینده گفتم مگه تو قرار بری آرایشگاه بزنی گفت نه میخوام یه دوره گیریم بیک گفتم داشتی تصویرگری کتاب انجام میدادی یه دوره که و فرقی نداره با هم رو صورت دختر اثر هنری تولید میکنم تازه پولش هم بهتره گفتم والا اینه که من دیدم انقدر کفان که نیازی به گیریمور و آرایشگر پیدا نمیکنن ولی بر تو فکر را انداختن یه مرکز رفع چین و چوروک چون وقتی تو سن پایین میکنند میکنن خوشگلشن بعید نیست به جوونی رسیدن بخوان چین و چروک رفع کنن جهت زیبایی والا فری بورز غریب برو بریم چه خبر سلام سلام کنم به همه شنمندگان عزیز متاسفانه باید با یه خبر بد شروع کنم خبر اومده که آقای علیه کفاشیان آره نه خود... طوریشون شده خوده نکرده فری نه نه زنده اصلایشون نگران نباش طوریشون نشده خبر یه اومده در تو داشتید و سیما مأمور تفسیر و صدا شدنش از اون نظر با سکته دادی ما رو بابا اون حالتی که گفتی اولش تو هم حتما نگران برنامه ورزشی خودت دیگه صدای آقای کفاشیان رو نداری دیگه تو رسانه‌ها. آره <تصفح> هر حال ایشونه که ایشون ایش ستونای تالار ورزش پس‌ردا بودن که پس‌ردا نشون می‌چون یه ضربه جبران باشه واسه ورزش. اگه موافقی آخرین صحبت‌های آقای کفاشیان رو که دیروز قبل از ممنوع تصویر شدنش از سیما پخش شد بشنوین کوتاه اما در مورد همون خبریه که دیروز دادیم راجب دلیل شادی نکردن کارلوس کیروش بعد از گل تیم ایران به سوریه که یه جواب بامزه داده بشنوین اصلاً احساساتی نیست احساسات‌هاش رو بروز نمیده اینه که تو قلبشم خیلی خوشحال شو بعد موند با مربی از سر تو کلی می‌خندید مرو من خیلی خب به این میگن جواب قاطع خب حالا چرا ممنوع تصویر شده ممنوع تصویر صدا شده چی شده گوتفراگه ایشون چند روز پیش طرح شکایت از صدا و سیما رو پیشنهاد کرد تو مجمع فدراسیون به خاطر اینکه باگردن کلپتی صدا و سیما اعلام کرده بود حق پخش بازی‌ها رو به تیم‌ها نمیده و با این شکایت آقای کفاشیان همه اعضا موافقت کردن سیما با این کار تلافی کرده عجب اگه با همین روند پیش بره ایشون هم بره تو حسر و ته باشگاه براشون بخونن کفاشیان کجایی دقیقا کجایی <تصفح> شمال دارین <تصفح> بله. بچه‌ها دیگه چه خبره یه خبر خارجی هم بدن فرشی جان که تو خبرها اومده بود که بعد از دستگیری یک قاچاقچی مکزیکی مواد مخدر اعلام شد که ایشون می‌خواسته باشگاه چلسی رو از رومان آبراموویچ مالک روسیه این باشگاه بخره او با توجه به نتایج این فصل چلسی شاید این تیم به شو که هم احتیاج داشته باشه فریبورز آره آره رومان ابراهاموویچ بله. قاچاقچی مکزیکی بره به خرتش ممنونم ازت فریبورز قریب باد می کنیم تا فردا Let your hair down, let your about to get down Oh my, oh my, oh my god This girl straight and this girl knock Tipsy off that pitch to rock like La la la Ching-a-lang-lang, ching-a-lang-a-lang-lang Jeans so tight, I can see those change Do your thigh thang girl, do that thing like <laughs> در سلام 23 یک شنبه شب را ضمن وحشت از ربوده شدن 400 نفر توسط داعش در سوریه با مروری و مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می اعلام که هنوز چهار زندانی آمریکایی آزاد شده تهران را ترک نکردند و نگرانی کارشناسان از اینکه وقت گروه های فشار ایرانی باز از دیوار برن بالا یه بلایی سر اینا بیارن رد صلاحیت 60 درصد از ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان و رفع نگرانی اخشار دلواپس از این که وقت خدایی نکرده وضع جسمانی آجاقا جنتی جلوی رد سلاییت رو بگیره و معرفی نسل فعلی بشر و اون, و اون اولین انسان‌هایی که هواوی به این آلودگی را تنفس میکنند و ابراز نگرانی نمایندگان انسان های اولیه برای ما نوادگانشان که آخ اله بمیرم بچه همون هناغ تو این هوا ترین سرخط های خبری امروز و امشب را شامل می شدند اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلی بلی با سلام محسن رضایی میرغاید پس از اجرایی شدن برجام به خبرنگاران گفت ترس دولت مردان آمریکایی از اجرایی شدن برجام کاملا مشهود بود پس از این یکی از کارشناسان امور محسن رزایی میرغاید به خبرنگار ما گفت آقای رضایی به علت سابقه زیادی در زمینه کاندیداتوری در کشور دارند به شناخت بسیار عمیقی از مسائل بین المللی رسیدند و یفصود اینکه یک کاندیدای همیشگی میتواند با وجود اینکه دولت مردان آمریکایی به زبانهای مختلف اعلام کردند که از برج می ترس آنها را از اجرا شدن این توافق تشخیص دهد نشان می دهد که ایشان برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری یکی از بهترین کاندیداها ها خواهند بود پایان محشوه اخبار ای بلی ما تشکر از توجه شما تا و شبیه دیگر و برنامه دیگر خدا نگهدار خیش تموم شد بابا آقا آقای میکروفون تلا آه. بفرمایید چی بل دوباره چی شده؟ استفاس این؟ نه آقای میکروفون طلا اون حرفایی رو که رویت نمیشه به من بگید توی نامه محبت هامیز برای من نبکشی بل نه خیر آقای میکروفون طلا این حرف چی؟ چیه؟ حبابت اشتباهات و توپقه های فراوونت به صورت مکتوب از من مذرد خواهی کرده هلان بل بل آقای میکروفون تلا اجازه میدین من حرف بزنم بابا بگو بابا بگو همش داری تو حرف بزنی دیگه تازه من باید اجازه بدم بگو ببینم چیه چی کاغذی به من دادی؟ میکروفون طلا این لیست حقوقی که من طلب دارم و به من پرداخت نشده بابا بلبل تو هم که همش دنبال مادیاتی، اصلاً من نمیفهمم چرا انقد مادیگرا شدی تو جدیداً؟ چی بابا شدی؟ حقوقم حقمه. حالا که ها رو برداشتن، شما پول منو بدین دیگه. بلبل بول ها رو کجا برداشتن؟ بیا این کافه دست من اگه مو داری بیا تو بکش. بیا یعنی چی آخه؟ من گره می‌فهم مفتی کار کنم اینجا آوری میکروفون طلا. نه مفتی که نه. ببین بل بل الان ببین ما تو دوره پسابرجام هستیم درسته؟ بله ببین من فکر میکنم تو دوره پسابرجام پسا پسا اینشالله دیگه حقوقتو همون موقع ها پردخیشه دیگه مسخره کردین من آقای میکروفون تلا مسخره؟ اصلا من آدمی همچنی چستی رو مسخره کنم بل بل من همچنی رویاتی دارم تو اینجوری منو سناختی بل بل واقعا اه. زشته این رفتارتون نانج... این... من رفتم شب خوش بله بابا بله, بله. آه. همش دنبال پولن این جوون ها این دور زمون ها به دکترت بگو چهار تا چوب بستنی بیشتر تو حرق مردم بکنه درآمدش بیشتر بشه اه به من چه باما. بابا بی خیال ما قبل از این تحریم محریم و بدبخ بودیم موقع تحریم و بودیم الانم چی؟ بدبخ نیم دیگه بابا انی نبودیم کسی می بگه بگی آقا لشتی بیایی رو بذار زیبت ما تحریم نیستی می آمد بگیم نه زونه من الانم اون آشو همون زونه؟ بی با بابا میلیاردها دلار پول منی به تو میرسه داشت من <تصفيق> <تصفيق> میدونی تیه داشت باست که تی این لبنان مبنان و این فلسطین ملسطین و اینا باید اینا باید خوشحال باشن ما با اونا خوب میرسه دیگه اما تیم مردم داش توفیل واسه ما نمیکنه کنه خیلال دف زونه هم داره هبه اون کدا داشت زمره زبونه خیلی زود اینا. ای با اونها ما یالا ما این میاد وازمون بهتر بشه نه جون من بعدمون میاد نه بالا ولی چی هر تی که دیدیم این بوده که هر شده ما زحمد و فقیر بیتاره و اینا رفتیم پایینتر انقلاب شد رفتیم پایینتر زنگ شد رفتیم پایینتر زنگ تمام شد رفتیم پایینتر دیگه چی چه میدونم این این اومد بیتاره شدیم دیگه چی؟ اون رفت بدبخت شدیم و دیگه تی؟ حالا هم تی این چی بازیه ته میدونم مزاكره مزاكره فرزان مرزام برزان مدن واسه ما سندارم نمیرزه داشم دونم بازم میگه این زوری ها نیست الان شما تی الان شما خودتتی کارت تیه. نه بگو داش میخوام بدونم دی تی دانستویی خوب شهریه مریه میدی دیگه داشت من میدی الان تی شده این برزام فرزان مرزام تی این شده میان بگن داش این ترم چی شهریتو نده میان بگیم نه دوز یا دوزار بگیم کمتر بده نه دا... نه دارشون من من خودم دانستو دارم نگه میدونم میدارم در درد دامه نه ببین ببین منطقات مسئله اینه که شما زبون ها مثل ما بزرگتران نمیبینید دارشون من دیگه به قول قدیمی ها اون چیزی که شما ها تو آینه می ما ماتی زی... تو خشت شد من این بخشید این اونی که ما تو آینه بینیم ولش اه... تی... کن داشت ای... اه... ما آمدیم نهاره این آدم ما کلا سرف بزنیم زه ستیم <تصفح> همون دیگه داشت خودت چی میدونی خودت بهتر میدونی ما بزرگتر یه چیزی میدونیم که میگیم دیگه اه... ای بابا این بازم میگه دوباره کدایی زبونی که یادت به خیره کشورم مثل تو زبون بودم دلم و به همین برزام و فرزام و این حرفا خوش میکردم والا تو خونه هم داشته من بساتم و همین بله بابا دخترم بامتی دامشتوه دیگه یه رشته میخونه چیزه هم مهندسیه هم چیزه پزشکیه اونم هم مثل همین شما همین حرفا و اینا رو بیزنه دست شما زبونا بریم ببینیم بابا بریم زندگیمون برسیم کشتن ما رو با این برزام برزامشون والا بگونه کردن والا موسیقی <تصفيق> کاش گی دل تو داشتم یار کاش از تا بود بود بلان فرشیجون از زیر ابرو برداشتن گفتی شوهر من من پای آینه نشسته و ابرو برمیداره یکی <تصفيق> میکنه میگه این سفید بود یکی دیگر رو میکنه میگه این سیاه بود یکی دیگر رو میکنه میگه این, بود. می می این کوله بود خلاصه پسرام کم بودن بچه بزرگه که بابای خونه باشه اضافه شده من هر وقت میخوام زیر ابرو بردارم باید دنبال موچین بگردم به قول یون با اعصاب ما خانوها بازی نکن حالا شما هم سخ نگیرین دیگه حالا یه موچین براش بخرین دیگه موچین میخریدین براشون حل میشه مشکل دیگه شما هم دنبال موچینتون نمیگردین حالا ایشون هم علاقه دارن که های یه صفایی به عبروها بدن دیگه چه اشکالی داره اصلا هر چی ایشونو منع کنید نکنیم نکنید،, نکنید نکنند و اینا ببینین بیشتر اینا حریص میشن ببین میافتن توی مسیر بعد ببین از من بشن یه دفعه میافتن توی میرن تو راه نمیدونم راهی دیگه یعنی میرن کم کم سرغ خط چش و ریمل و این چیزا دیگه اینه که موچین شما براشون بخرید قضیه رو فیصله بدین ببین راحت باشن شما خودتونم راحتین از من بشنوین دیگه موچین یه موچین راه کاره. اما خانم ها آقایان دکتر فرمان ماق پسرارو تو حال و هوایی که حتی سنف نونواهای تهران هم در جهت ابراز خوشحالی برای اجرایی شدن برجام امروز چند تا تنور نون علواتی پخت کردن و بین مردم پخشوندن هیئت نظارت شورای نگهبان اما از این حال و هوا سود برد و رد صلاحیت 60 درصد از ثبت نام کنندگان تو انتخابات مجلس رو اعلام کرد تا برجام همچنین دولتی ها شیرین اسلام نباشه امروز حتا این ماجرا به نشست خبری شیخ حسن هم کشیده شد و در آخرین سوال خبرنگار روزنامه اعتماد بعد از اینکه تبریک گفت به شیخ حسن روحانی برای به انجام رسیدن برجام ازشون پرسید که ما درست در زمانی که شیرینی این پیروزی بر کام ملت ایران نشست خبرهای خوبی در حوزه سیاست داخلی و به خصوص در عرصه انتخابات به گوش نرسید چهرهایی با سابقه بودند که رد صلاحیت شدند و با توجه به اینکه شما یکی از وعده های انتخاباتی شما برگزاری یک انتخابات پرشور بود چگونه عمل خوین کرد و اینکه تلاش و رایزنی در این زمینه انجام خواهید داد یا خیلی؟ بله شیخ حسنم خب اول ماجره رو شوخی گرفت و گفتش که همین مدل برجام باید اجرا کنیم در داخل هم. یعنی با توجه به اینکه خب شورای نگهبان تشکیل شده از 6 تا حقوقدان و 6 تا فقیه باید دولت بشینه یه طرف با گروه 6ه به مذاکره کنه این بار با این تفاوت که خب اینجا دیگه زریف مریف نداریم شیخ حسن علاقه بعدش کمی جدیتر وارد ماجرا شد و اینجوری گفت بله من هم اطلاعات اولیهی که به من دادن خیلی خوشحال کننده نبود ما بسیار امیدوار هستیم که شورای محترم نگهبان به این مسئله رسیدگی بکنه و اگر موردی صلاحیتی تایید نشده که قابل تایید هست که به نظر من این موارد فراوان هست شورای محترم ن نگه... اهوان دخالت بکنه من به عنوان رئیس جمهور از همه اختیارات هم در این زمینه استفاده خواهم کرد بله حالا اه, پس بعد از این ماجرا دقیقا میفهمیم که اختیارات رئیس جمهور تو مملکت ما چقدره البته قبلا بگم فهمیده بودیم ما زمان ریاست جمهوری خاتمی مثلا ما رئیس جمهور داشتیم که چه می‌دونم برای گاهی برای کشتن یه پشم به نظر میومد قدرتی نداره حالا بعد بشینیم ببینیم مدل شیخ حسنی رئیس جمهور چه جوری عذاب در میاد. فقط امیدواریم در نتیجه این مذاکرات با گروه شیش و علاوه شیش یهو اینجوری نشه که قرار بشه مؤذن له مثلا مذ مرد این کبوتی و از دیوار بیاد پایین تیریپ قرمانی ماجرا رو بگیره بعد با حکم حکومتی مثلا چهار نفر رو بیاد تایید کنه و تا عبد ملت بخوان زیر مننت ایشون باشن چون میدونن که ایشون بار مننتشون هم خیلی همچی سنگینه بعد کمر نهیفه ما خب توان حمله این بار رو نداره به خدا نداره با تشکر مبارك. مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک، کامران، مبارک، تولدت مبارک مبارک تولدت مبارک, مبارک. بیا کامی کامی فوتبال، مبارک ولیکوتی تولدت مبارک سلام سلام فرش جان ممنون امسال هم ما کردین همه گی خواهش میکنم میخوای بگی آلو. چند ساله شدی یا به حال میخوای بگذریم از اصلا بیخیال مثلا چه سوالی من میکنم رفتن، اصلا اصلا 53 سالگی آره مثلا خیلی فرق میکرد چون و سفارتفانا چیز این برجام تولد منو تحت شعار قرار داد مثل جلال که حمله به سفارت تاهن شوارا رو داده بود تولدشو آره مسکر... خیلی دیگه نااجورتر بود خیلی بد بود راست میگه خیلی اصلا به این مسئله دقت نکرده بود خب کامران از بوکوچمو بو خوش کلام کنای هنری چیزی نمیخوای برام بگی والا چی بگم من پریشب نشستیدیم با چند تا از دوستان یه فیلم ایرانی می دیدیم اسم بازیگر اول فیلم تو تییس نبود برای همین ده تا اسم برای بازیگر زده فیلم حد زده شد آخرم هیچ کدوم نبودم از بس که ماشاءالله همه اینو هم بازی میکنن یکی از دوستان برگشت عصبانی دو اینقدر عمل کردن همه شبیه هم شدنضالا همه با هم بچی یه دکتر رفته بودم برای عمل دیگه احتمالاً تو چند وقت پیش رضا رشید پور توی برنامه دید در شبش با شوهر شیلا خداداد که جراح زیبایی به همین قضیه صحبت کرده اگه موافق باشی بریم ببینیم, ببینیم های دکتر چی گفته ببینیم چی گفته چند تا بازیگر سینما ایران رو تا جراح زیبایی کردیم؟ زیاد زیاد ده میشه زیاد صدم میشه زیاد نه بیشتر از ده کم پرستار بیشترشون خانم بودن یا آقا بیشتر خانم و آقایون روی صورتشون جدیدن شدیدن آقایون هم تزریق میکنن درسته؟ بله، آقایون هم از این کار رو زیاد میکنن هم. آقایون یعنی تزریق لب میکنن دکتر؟ نه، تزریق لب و این هم خیلی به ندرک هم اتفاق دفته ولی برای چین سلوک های صورت یکی آقایون سیریه رو برای پر کردن رو برای چین ها بله، میان میزنن بله، تو خودت تا حالا عمل زیبایی نکردی؟ کامرا. نه بالا من کارم از عمل گذاشته الان تو نوبت ایران ناسیونالم کمپلت اتاق عوض کنم دیگه <تصفيق> دیگه برای میگم الان تولد زمه هستی کم کم بعد دیگه یه دستی بکشی دیگه حالا بهش فکر کن آره ببین, ببین، آره. چی میشه شاید با هم این سری من آمده آره. با هم بریم عمل کنیم آمریکا خوبه دکتراش آره. خوبه خب حمر تو بعد بریم بیکاری من یه کاره دیگه اصلا ولش کن خیلی خزینه بود <تصفيق> <تصفيق> خب بریم سراغ موسیقی آلبوم جدید کار جدید چیزی بیرون نیومده جدیدا چرا این روز یه کار خیلی ارزشمند بنیاد رودکی منتشر کرده به مناسبت 800 سال تولد مولانا به اسم روی در آفتاب که آهنگسازش صادق چراغی و علیرضا قربانی هم خوانندهشه ضمن استاد ترنز بهرام هم متن آلبوم خونده بسیار آلبوم شنیدنیه بسیار خب بریم یکی از کارهای این آلبوم رو به اتفاق بشنویم به اسم به آفتابم با صدای علیرضا قربانی بعد خدافظی می‌کنیم کامران عزیز و باز هم تولدتو به تبریک میگیم از طرف خودم همه بر بچه های پس فرده تو فردا شب هم از آفتا بویم نشبم نشب امروز, امروز روزنامه اطلاعات به نقل از رئیس ستاد انتخابات کشور نیروهای مسلح در انتخابات دخالت نکنند منظورش اینه که فعلا دخالت نکنن دیگه اگه وقت مثلا ستاد انتخابات شرای نگهبان از پس رد سلاحیت و برنه ایمدن سرسدا شده اینه حالا اون وقتی بد دخالت کنه روزنامی جوان امروز با اشاره به تعداد تعیید صلاحیت شده ها برای انتخابات تیتر زده بود که رقابتی ترین انتخابات تاریخ یا خدا روزنامه سپاه درست روزایی که شایات عجیب و غریبی از رد سلاییت ها به گوش میرسه وقتی یه همچید تیتری بزنی این دیگه فاطعه این انتخابات هم باید خونم و تیتر امروز روزنامه حمایت با اشاره به تاثیر لغو تحریم ها بر بازار بورس و ارز. رفتار حیجانی در بازار بورس و ارز. حالا امیدواریم حیجان زیادی باعث سنکوب کردن بورس نشه یعنی واق امشبمون هم تموم شد و تا فردا باید به شما خداافظی کنیم. شاعر میگه چیزی از زیبایی جهان به تو بسته باشد انگار. شاید همین است که بیتو نه تراوت صبح خیرم میکند نه ستاره باران شب شبتون ستاره باران. نمیدونم نگاهت تو چه احساسی به من داده از وقتی تو رو دیدم جهان از چشمم افتاده تو رو هر بار میبینم دلم می لرزه از رشه برم تقریف و زیبایی توی لحظه میشه اگه نی بینم بد هر روز برام از رو یاد نیست، تماشای یت چیزی جز شروع یک عبادت نیست برو هربار بار نبینم برام شکله گرای یه نمیفهمام نانی تمام زیبایی چرا جمیل بنامد هر روز برام از رویادت نیست، میست تو تو چی چیزی جز شروع یک ابادت میست هر بار میبینم برام شکل گرای یه دغدغه نمیدونم انقدر زیبایی چرا